تو بالله منا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا ضد على اعدائهم اجمعين اللهم اكرمنا جميعا المستغيثين وارحمنا برحمتك يا که اینجا مفرخ الان مفرخ کردیم بحث راجع به حکم حلق الهیت و که البته در این بحث کلیشت که غالبا در کتاب زیو که جمال متعرض شدن مرحوم استاد باقویی بعد از شیخ اولین کسی است که اینجا حرزه نهی اضافه یاد اما خاطر شر که توضیحاتش خودش بحثی که الان مرحله این دلیلی که برای این مطلب هست چیه بر تمسک شده دایم مبارکه تعالی و قیوان خلق الله که اطلاق قیوان خلق الله شامل بشه همهلهیه رو ما را دید این مطلب مثلا طولانی صحبت شد بیالا مقام نتیجه گیریز کردیم که در روایات ما اونجایی که ما داریم ارز کردیم این مسئله تحقیل خرقالله از زمان صحابه شروع شده برسای شده اینطور طور نیست بعدها یه تفسیری بود که مثلا اخت کردن جز تحقیل خرقالله وصل شعر همزن موی زن دیگری به مون شوشت سونه بگذر بستش بشه هم تغییر خلق الله این هم توضیح دادیم راجع به حلق لهیه به این عنوان در کلمات و قدما نیامده عنوان حتی مثل مرحوم علامه سبا سبا در المیزان غیر از این دو موردی که ما ارز کردیم مثلا ایشون لباس رو هم دو تغییر خلق الله دادیم یا مساحقه نستجیباله در زنها اونم جزه تغییر خلق الله از که این بعدها باز از زمان خود صحابه شروع شد به بعد و تابعی گفتن نه این آیه رو ما با آیه دیگر فسطفالله هلتی فسطفالناس علیه ها لا تبدیل لخلق الله زالک دین و قیم تغییر خلق الله تغییر دین الله فرد بین این دو تفسیر هم کاملا واضحه اگر تغییر خلق الله رو با عنوانه حرام بدونین یعنی هر جا که تغییر خلق الله باشه ذریعه‌ای خود صرریه خلق الله که از محرمات. ولی رضا بنده از ذکر کردم که در اطلار بحثا، نگم میخواست این روی ای عنوان مستقل قرار بگیره چون ما شیخ هم قرار داد هم قرار ندیدن. توی حروف هجایی ما رو حرف ها خوب بود تو حرف تا این حرف اضافه می‌کنیم تغییر خلق الله. این روی مبنای اوله. اما اون مبنای دوم نیمی که تغییر خلق الله حرامه میگه اول باید یک چیزی ثابت بشه دین الله تغییرون حرامه خب بر جای دین الله باشه تغییر اجازه تغییر این دو تا با هم دیگه رو چند تو که فرقی تزنیم در روایاتی که ما الان داریم عرض کردم روایت صحیح نداریم که داران عرض روایت محسل داریم چند تا هم در این چند تا ما امر الله هست دین الله هست امر الله به با امره به همه هست همه اینا همون سده به عنوان تغییر قلق الله به این اجمالا همین حرف طرف بدی نیست لکن اون تفسیر نهایی که من ارز کردم میشه من حیث المجموع دیگه جمع کرد از او قبول چند اینه که اگر این دو تا آیه رو بگیم نظر اهل قیث این اینه که این آیه در زیر اون آیه معنا میشه. واقع این طور میشه چون در اون آیه مبارکه داره که مکلال که واهی این آیه به ملت ابراهیم حنیف هم اول به عنوان ملت ابراهیم و تنفی که حضرت ابراهیم داشت که از شاید شواهد کافی از این کاشف از این باشه همین لغت نف در چه لغتی بوده حنف حنوف شن تو خوندین عبارات خوندین روشن هستن زعما بعید نیست اونی که از روایات در میان تنف این طهارت پاکی و حاکی معنایی هست، تویید هست، اخلاص هست، دین الهی هست، تا پاکی ظاهری، سبیل کوتاه کردن هست، زیر بغل گرفتن هست، آن کوتاه کردن هست که در روابط آمده، مسافر هست، خلال هست که در بزرگی آمده، کشتان هست در در مجموع روابط. این از چه چون گذشته میخوام بحث بشن پس ببینید دکتر که اول تا مدل تابع ملتی بعد از این به سلها آیان در مقام بیان یک قائده یه کلی رو بیان فرموندن لذا ما در این تغییر خلق الله متقید به ما با به عنوان فقفته به عنوان حنیفیت نیمیشید از کاری مجموعی صفاتی که در روایات ما و سنت سنن به عنوان فکرت و به عنوان سنن انبیاء و به عنوان به اصطلاح کلمات علم الله ابراهیم و اناغین مختلف مجموعش به نظر بین ما و احل سنت با این سننون مرسلیم با, با, مرسلی با همه جمع حدود 35 تاست مجموعش ذریف و سقیم و همه رو با همه جمع بکنی از تو تور باید مشروع 10 تاست 5 تاست اما همه رو با سننون مرسلیم و همه رو جمع بکنی چیزی در حدود 35 تاست مکنی مشهور در اون روایت 10 تاست که حنیفیت 10 تا بوده. اون سنت از دروحی فیتت الالف فر 10 تا عنوان ایراد میده اما مجموعش متفرقات حدود 35 تا که اکثر مطلب رو هم من از کتاب فخر الباری ابن حجر یستم از اهل سنت من توی روات خودمون نیدارم کسی من نگاهم که تون من کامل ندید اون مزاری که من مراجعه کردم کسی نه مد جمع بکنه که کل واقعا نیست اون بخشا جمع بکن کار خوبیه <تصفح> کل اونهایی که به عنوان فتره سنن انبیا، من سنن مرتلین کن به اینا جمع بشه صحیحا و صحیحا رعیفا و صحیحا اما نمکنم خبید سنن هدف نقطه دیگه لیکن بعد از اینها باز آمد فطرت الله ارز کردن فطرت الله در باران یک بار به کار اینجا مثلا نار الله هم در قرآن یک بار بکار بردسته جنت الله هم بکار بازن جنتی هم یک بار بعضی از عنافینی که اضافهی به خدا شده اضاف الله نه اما اونه که اضافهی به خدا شده بعضی هاشای یک بار نار الله الله جنتی ناجه دسته در قرآن یک بار و این الله هم جذر آزاد مکی اما هست و هشون داره فطرس اللهالدکی فطرنناس علیه ها در تمام لا تحدیل له خلق الله زانه کذین و القیم حالا اونی که من فرمیدم چی می‌خوام می‌گم دارم درخواست می‌کنم در تفسیر من آمده راه خودم فهم خودم را از این آیه مبارکه من ریسا و تفسیر ذهنم میاد که یک زیر بنا داره و یک روبنا زیردناث که سفلاه روبنا دین القیمه پس خلق الله نتی فکر یعنی که کندما هر چیزی گارا یک واقعیت است. این باید باز بشه خود فرط ونشتر شکافته شدن اون واقعیت باید گروز بکنه دفت کنی حیل از که اون واقعیت باید گروز بکنه اون واقعیت باید باید قیام بکنه بینه قیام یعنی به بایدیگر اون بچه مرده به دنیا نگم زنیف هم نباید باشه قیام باشه بیتونه قیام بکنه و این فسرت الله یعنی خداوند متعال به مطابق اینجور میخواد من. من یک فسرت الهی قرار بدن یک واقعیت در فریت قرار دادم این واقعیت ها باید باز بشه این همجور که باز میشه این واقعیت ها به اون رشتشتی میخواد برسه، این روش و دین درست می کنیم دین ها قریه دین ها اگر اینجور ما معنا بکنیم آیه مبارکه رو یک زیر بنا رو روبانا و اون لا صلی و غیرون هم دین بزنیم به زمین اون روایا این طور میشه که هر چیزی یک واقعیتی داره اون واقعیت واس منتقر بشه منشق بشه باز بشه شیطان حث شیطانینه لا امرنهم من به هم امر میکنم چون ظاهرش اینه که نقشه باید باشه حالا یه دفعه کسی یه کاری از واسه در رفت اون نیست یه نقشه شیطانی این نقشه شیطانی این میشه میاد جلوه خطرت رو میگیرنی این خطرت دینقییم بشه خطرت رو این خطرت الله اللسی فتران ها اون واقع اون حقیقت این باید در بیاد روش بکنه بشه دینقییم شیطان چه کار میکنه لا آمورن نهام؟ من به اونها دست صور این قدرت باز نمیخواد بشه این تغییرشیده این دیگه باز نمیشه جلو رشدش نمیگه بقول جلو تکاملش جلو رشد چی میگه رشد نه همین جلو دینکایم رو میگیره نظام در روایت اومده فنای در می خلقلای دین الله نه دین الله دین رکیم این مانع میشه این پس بنابراین اگر ما بخوایم برای تغییر خلق الله موضوع پیدا بکنیم حیرتش اینطوره مثلا همین اخته کردن اخته کردن چون بلاست راست در انسان ها هم بود خب این قطعاً تغییر خلق الله است اینکه نشخ حساب یا اختصا در روات ما اخصا هست. من در اینجا منظورش رو ادبی صیغه در روایات هم مستعمل شده اما میگن این لهمه صیغ حساب سلیس مجرد سیدان عزیزم کی ما به حساب در انسان تغییر دین الله است. روشن چون شما خدا اینو مرا کرد یک دینه تغییری داره که باید ایمان بکنه آیندهای داره، حسابی داره. چه تو خواسته خودش رو داده. اینا برای این که این شخص، اختر کشید، بهش میشند افرادی که میخوان مثلا کنیز مردشون، برگشون، وارد زنهاشون مشکل نداشته باشن. خدا میگه این تغییر امر اندرا شیطانی است. پس این یک قسمتی داشت، یک وجودی داشت، این وجود داشت که کوفه میشد، دینه خیلون بشه. یک عنصر شیطانی آمد. عنصر شیطانی شما از این برده استفاده کنید در زنها، بتونن به زنها وارد میشن. این بردی که خط‌اخته بود، این این خاصیت داشت، قیمتش فرق میکرد. چون مرد میتونه برای قضای داخلی اندرونی از اون را استفاده بکنه. خب تکسیل روشن شد تکسیل روشن شد ول آمرن نهان فلیوغیران ندین الله فلیوغیران خلق الله اگر ما اینجور معناه را کنیم به نزرمن خیلی معنای لطیفیه خیلی معنای تشنگیه اون وقت مثلا افت کردن خروس ممکنه دار افت کردن خروس حرف نزدنی چرا؟ چون خروس رو شما کچیکند پاشیم توی بکشیم بخوریم اون حدف کردنه یعنی اون یک راه تاست خودش نظام من اونرو به کل یه مدار دو فعلین میخواد یک تفقکن. این رو مثل بگیم اخ کردن خروس مثل تبدیل الله خوب دق کنید اخ کردن خروج یا بز یا گوسنده نه این تبدیل خل اللهه چون به هر حال هدفتی که در اون بود این هدف شیطانی نیست هدف که در اون بود خورردشه استفاده از گوششه اون یک جوره این یک جوره خوب دقیق کردیم یا مثلا تصرفاتی که الان در گیاهان میکنم تصرف ها مثلا گندون میگیرن یک جوری کار جوری. این در حقیقت تبدیل خلق الله هست ما در تقیق به این دوتا تنگ بگیزنیم یکی تغییر خلق الله هست. یکی تبدیل خلق الله هست. اونی که نقشه شیطانی هم راشه، تغییر خلق الله هست. پس تو بحث مکاسب هم که ما یه بذاریم و عنوان تغییر خلق الله اضافه بشه حدود تغییر خلق الله هم روشن شد. اون محن چه بیاییم با عنوان خطرت و حنیفیت ابراهیم حساب بکنیم؟ چه به عنوان تغییر خلق الله به این معنا شمولش برای شراشی روشن چون در باشه ممکن است مثلا می شما هر روز واقعا ببین روز روزه یک بار واقعیت بشین ممکن این تیغ مثلا برای صورت همینطور هر حرف برای صورت خوب نیست دیگه بلا اشغال گذاشتن محاسن برای صورت و برای سلامتی پوست بهتره لكن ما انقدرشون دلیل روشنی در این که کلیه ذرات جزئی حرام باشه نه ضرر به جمعی مراتبش بر نفس حرام باشه دلیل روشنی نداره حقا بولارو استادهای خویه ایشون اگه از مبانی ایشون چه ضرریتی در این نداریم عمره داره مثلا چیزی گردو تنها بخوره خوب نیست رو خوردن گردو همراه مثلا کرما این ضرریتی معلوم نیست در دیری بر هو اخلاقی بر ضرریتی ما نداریم. این ممکنه از تراش دروش ممکنه از داخل در در دراز مدت یا کوتاه مدت از رو صورت یا اوپوش باعث یه آسیب بیاد اما دلیلی بر همتش چیزی نداری این رو جز تغییر خلق الله قرار دادن روشن نیست اصلا نه این هم میکن لازم نیست این روشن نیست. میونه جزره سنن هست ابراهیم یه مشکل عجیب اینه در این دههایی که از سن اصال نرم شده ای تو بعضی هست تو خیلی باشید اکرا تویش نظره ا فال یا لظ به نظر ما این استدلال اولا تغییر خل الله ان ما روشن شد میشال الله صن یعنی استبدال به تغییر خلق الله برای حرمت حلقه لهیه این انصافا خیلی مشكله چون همچی اطلاقی که هرچی شاخه درختی بگی این تغییر خلق این روشنه این چیزی ظاهرش با ارجاع آیه با اون آیه و اون آیه رو به معنای قدرت و دین تعیین معنا کردن و اینکه تغییر خلق الله در اصول رو میگیره جلوی دین تعیین رو میگیره این امر شیطانی است این با مساله به اصلاح حلق لحیه انتباه نداره این خلاصه زیده همه این طولانی شد استدلال با آید نظر ما روشن نیست. استدلال به بله غیره دوم به استدلال در کتاب مرموم استادم آهردن بهشون متعرض شدن مرموم های خوبی در مصوال به قاعد خب اضعه دیگه هم نوشتن در این که زید شده چون رواستم هست، اجمانه به اجمان تمثل کردن از ادعایی اینجی در عباراتی از مترخترین ما آمده در کتاب کتب اهل سنت اهل سنت ترجمه ترجمه میشین بله مثلا در کتاب جواهر آمده مثلا الا انیکون در کتاب جواهر در هر جواهر به مناسباتی این جلده 19 تفیل 236 در آخر عبارد الا انیکون شهرتن بخونا که شهرتون بین الاسهاد پس و جا برن این البته این بحثی که ایشون کنی به کوتاه کردن زن موی سرشی نریشه من موی زن سر فای جایزیانه لنحو مرسر المذبور بنام پس این عبارتی ایشان محلوم میشه که یا شهرت یا اجماع هست بر این که یا شهرت یا دقل شهرت اجماع هست در این که حلق لحیه بر رجال حرامه این دعوای اجماع در کلمات سابق مثل علام و اینها ما نداریم اما در بعد کلمات متحصیلی دعوای اجماع نمیشه ها، این اشکال بر اجماع خو، خب هنوز میشینیم یا دیگه؟ گفته وازه هریوانی میخوام میام، اوم که از زمان معروف نوین و قبل دیشب تری مشهوده، حاصلش که اجماع، بسلاهم مدرکی که شوند هم از سبب کردن خالهایی کردن اجماع مدرکی اهمیتتره. این یک، دو میگن اجماع، اینجا در به خصوص در منافی کسی سرایت موده ی اجماع نشده از دوزرلان، این عبارت اشاره داره. و مسئله مهمتر که آیخوی و دیگران بود تعرض کردن اصلا مسئله بحث حلقلیه در کتب قدمان نیامده که دا ادعای اجماع بشه این بحث در این اصلا یعنی اصلا این فتواه نیامده در کتب قدمان چه حالا ما در دعوی اجماع بکنیم اگر اجماع بکنن یه اجماع فنی فنیه تغییر بلا اصلا تعرض به مسئله نشده در کلمات شیخ توسی یا شیخ مفی اصلا تعرض این مسئله حلق الههی نکده یکره هم نعمده و, و لذا این دعوای اجماع در ما نحنفی انصافا تام و تمام نیست این اشکالی که بیدیم در دوم. شد من چون هم زیاد صحبت شده و هم زیاد این مثلاً من ارز کردم اجما که رانا کردم به این احل سنت از زمان خلیفه دوم از زمان دوغمی خلیفه هم بو نمیدیم. از زمان این حکومت دوغمی شروع شد به عنوان یکی از مصادر تشریف خود دقیقه اومانی بعدها در روایات ما از روایات ما مصادقه عباقل حجی کافی نگاه که جای بگم در, روایات رو در روایات بحث روایات و اجماع در بحث یه بحث اجماعی میخواستیم من جای دیگه بحث اجماع رو اصول میشم کلمه اجماع آمده و ها به موالا خلافیه بین المسلمین از کلمه اون اجماعی که در براس اون دیگه داره بعضها در کلمات مثل سید و مرتزا و دیگران هم ادعای اجماع در احکام آمده اون هم یک زیر بناب داره بعضها اجماع در کلمات مثل اعلانه آمده اون هم یک زیر بناب دیگه داره به حساب دیگه داره. بعد های اجماعاتی در مثل از قرن 11 به در که مثل جواهر یا از جواهر آقای حکیم در مستنسا گرفتن اون هم بازی جور دیگه بردار میشه اجماعه اصفه اینه که حالا غیر اصفه خودمه اونی که متاخترینه ما مثل مرون نایین و دیگر ها قبول کردن تا یه حدی اجماعه رو اینه اجماع باید یک نهری باشه مسئله که درشت شده. شما شد بتوانیم از اون مقدار اتفاق در رهی و در فسوا مثلا درستیم به قول امام یک نقلی باشه خصوصیات که بتونیم از اون اقوال و از اون اجماع قول امام رو کشف بکنیم چون این قول این قید آوردن میگن اگر اجماع مدرکی شد یا محتم مدرکیه مذکه رو باید پس کنیم قول امام کشف این فقا بگین اعتمادی این که میان اجماع مدرکی حجت نیست، اون نقطش نیست، نقطه گشنش چون میان اجماع باید دارای یک ای باشه، یک جوری بود باشه. که ما بتونیم از بفهمیم قول امام. از هم بحث دم اجماع که در کلمات علام زیاد آمده، یکی از قبیل تایید این رد هایی که بر الله مو بر دیگران در اجماع شد، مربوط مال محمدالین است و تنها دو مدنی است. یکی از رجایی از کلن مبارسی که اخباری ها با امان ردی برای اصولی یا گفتن چند تاش اساسی مهوریه هیچ برایت در شبهات و حکمیت یکی استثابه میکم ای اجماعه اینا جز باید یکیم زمان کتابه چند تا رهد به مهوری دادن و خودمالله محمد علیه استرابادی با این که قبول نکرد سوزه قسم کنید گفت اجماع و قدما بر و قدم ا لذا خوب دقیقه بکنید این نکته افتندی رو من مخواهیم تقریبا اینجور آمدن گفتن شیعه ای اینطور بنان شد اجماع به ماه و به اجماع به حساب مسادر نیست اما این اجماع میتونه گاهی به شکلی باشه خوب به اجماع به شکلی باشه ما بگیم این قول امانه این قول امان لذا بناشون ببینید که اگر بخواهن خودش رو به عنوان دلیل مستقیم حساب بکنن یک جوره اگر بخواهن به عنوان مکمل دلیل حساب بکنن مکمل دلیل این چی؟ این ما تو مساله روایت داریم روایت ضعف داره ابهام داره لكن با اجماع که زمینه بکنیم مطلب واضح میشه بخدا گاهی اوقات اجماع به نفسه کفایت میکنه گاهی اوقات نه اجماع به نفس کفاید می خود امریک آن شیخ انسالی در این رساله ذریب و بعد از شیخ قبل از شیخ و فکرهای ما خیلی دیگم مثل بیدود و علیه قبل علی اجماع حدیث پده و یدود و علیه بعد علی اجماع بعد اجماع بعد اجماع این قبل اجماع و بعد اجماع اشاره به همینه اگر گفت قبل اجماعه اجماع, اجماع مدرکیه خودش نفسه کافی نیست، این باز زنه باشه اگر از اجماع نه. نه اجماع قبوله اجماع قدر دل اجماع, اجماع دلیل بعد از دل این هم میتوانه از واضی استفاده انصاف قضیه تمثل که به اجماع در این مسئله با عنوان یک دقیقه مستقل با قضای تعرض سریه خودما انصافا مشکه بینید انصافش این مسئله رو که اشکال کردن درست. اما اینکه یک اجماعی به این محنه خوب دقیقه بکنید چون اجماع هم اطلاعات مختلفی داره یکی از اطلاعات اجماعیه هر کسی متعرض مسئله شو گفته حرامه فقط همه متعرض نشودن روشن شد همه متعرض نشودن پس اگه فقهامون 15 نفر متعرض شدن 20 نفر متعرض اما این 20 نفر که متعرض شده یه قوله گفتن گفتن هر چیزی حرامه اگر رویدید ما به ذوہی بسیار در این بسیار خوب داریم. هر و منار مرحوم شهادتullah ت سریه که که چنین اثر ادبیات سنگین قلمش سنگینه خیلی از تعبیراتش خیلی لطیف نیست خود کتابیشان و اندیشه ایشان اگر گرفته بشه و حتی کتاب روشنی، لا فارسی ها و عربی در مجموعه اون اندیشه نوشته بشه بسیار مفید یکی از کارهای که مرحوم الله مرحوم که بعض یا دعاوی اجماع دارم این تحلیل که می مختلفه راستان میگه خیلی تحلیل قشن می دارم حرف خوبی سرفاییشان یکی از معانی اجماع اینه اگر معنی اجماع این باشه خوب دقت کنید چی مخموم عرض کنم اگر معنای اجماع این باشه هر کسی متعرض شده گفته حرامه همه متعرض داشته هست هشتات درصد فوقهای ما متعرض نشد اصلا متعرض حلق علیه اما اگر شدن گفتن حرامه اگر اجماع رو به این معنا بگیریم این اجماع انصافاً ثابته یهو این چند سال اخیر یه بازیموسه خدا رو گویه که وجودی تا قبل از ایشون هر چی خطا سر بله ملکه به لحاظ ارزش و شاید این اجماع رو مکمل بگیره یعنی یه چیزی شبیه سیره بشه یعنی به عبارتون اخرا اجماع صلاحیه اجماع شما بگید اجماع رو مستقل نمیتونیم بگیرین این فتاوه با قرینه یه ای رواسته کلها معلوم میشه این مسلم بوده ده. یعنی ببینید ارتکاز بقوله از سر سواهندگیتی ها بگفتنیم شکنیم آیا حکیم بگید تنجام اضافه ارتکاز و متشبه این به عنوان ارتکاز و متشبه اجماع استلاحی نیست اما ارتکاز این بشه متشبه نت بیشتر که هم سیره متشربه نمیگه میشه نه موقت. خب همین این سیره رو به زمینه او دلالت رو تمام بکنیم خب كيف بله ببینید اگر پس این اشمارو خب این یک بحثی است کردن سنی ها کل هیچی تو رو خودش ماها که میشیم میگه بحث دیگه ماها چه براش کاشف بگیریم کاشف یعنی باید یک شکلی باشه یک فرمی باشه یک عدد از اقوال باشه تا اینا رو که با هم جمع و تحقیقون قوله ها سی جری این همیشه به این شکل پیدا نمیشه از مادر اصطلاحات ما اما بیام بگیم در این جزءا چه روایاتی هست این لاعقل مکمله اون روایات میشه و بلی که بالاتر بگیم اگر قدما هم متعرض نشدن در حقیقت مثل کلینی اگر متعرض نشده یا مرحوشی قفدو چون روایتیش اومده این ایکن باراتر بگیم اصد چون روایت افایل کا آمده حده اقل افایل نهیه نتراشده دیگه حده اقل درست کردنشم قبول نکنی حداقل اقل نتراشده باید نشون من درسی چون اون بحث اگن چون من این احتمال رو دادم که اصلا مراد از ایفای لهی ن نه بلند کردن دو تا معناست مثل زیدون کسی و رماد میمونه این یعنی که زیدون خونش خاکستر زیاد داره آدم گداشش رو پخته به باگاز اصلا خاکستر نداره اما کسی و رماده اصلا مراد جدی از ایفای لهی تراشیدن ریش نشه باشه نه اینکه بلندش میکنی. من بکنی بکنید من مخالف اون وقتی دیگه یه وقت دیگه چرا متعرض میشم نمیخوام خرد بشی اون وقت در کتاب ها یه مقدار از اقوال آورده شده این کتابی که قبلا نوشته شده من از چند دی رساله مفرد درباره هرکلیه نوشتن آقایان مراجعه کردم من نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم مرحوم آقای اسوان باقر بهر العلوم بود از علمای نجب ایشون سر این صابرن ثابت هست که خواب نشده. کتاب چیز دارد؟ توفت و طالب فی حکم لحیت و شارب ایشون از دیدگاه های مختلفی وارد بحث شده درده بله. من جمله یک مقدار زیادی که ایشان نسبتا اووردن روایت بله عبارات فوقات اولا ایشان همین مثلا من از ذهنم همون نبود خودم بردم ایشون بگه چون صدوق هم روایتیشو آگرده و کلینی اینا هم قائلت این هم حرف بدی نیست این هم انصافن. بله یه مقدار این نسخه که این آیه مختاری عبدالله برای من آگرده نسخه کم داره یه صرفشو افتاده هم. نمیدونم بله حالا بقیهش چی بوده نه یک مقدار این است که مقدارش حضر شده داره اون مقداری که موجود و من هم شیخ علی سبت شهید ثانی کتاب داره به نام درول منصور بله من هم سید المحق و دامات کتاب شارع نجات میگن عبارت ایشان خریح ظاهر کرد و دعوای اجماع باشه. اینا از قرنهای دوازد و تیزده به غده. من هم در وافی نقدر افتا جماعتم به نرفقه ها به تحریم خلق حلقه اللهیه بعد مرحومه مرحومه مرحوم مرحوم واقعی مرحوم فیق وراب مایستش شداله لهم به قولیه سبحان و سعالا ادلیس اللعیم ولا آمورن هم پردیو پردیو خرمالا کرده نمید من هم ابن نبی جمهور احسانی که در قرم ده در کتاب اوال اللهالی من هم سن نعمت الله جزائری در شرح اوالی بل مفافی هر رید گفته بلا و ولا شبه حرامه من هم شیخون الهرق العاملی در وسائل در غرمی آزام ایش بابی در وسائل قرار داده باب تحقیم و حلق اللحیه و خود ایشان در دسته کتاب توی هدایه گفته من هم محدثت بحرانی در حدائه که ایشون فرمزه از عبارت اصحاب در میار من هم شیخ جعفر کبیر در کتاب کشور کتاب از اصله هود انسان المسلمات ابرارت کشور دستهای نویح و محلقه ها و جستهب و توحیرها در قدرت منیاد ساهم آن این در عبارت کشور بوده و من هم سلاح سید سل عبدالله شوبرت در کتاب احسان ترمیت اونی بحثی که از اینجا آشکاب باز بکنیم ایشون اضافه برای کهرامدان است که میتونه نه کباء چون محشوب در عبارات همی است کبایدی اصحاره برش ایشون مورده هم حلق الهیه دوزه کبایدی من هم شیخون البهایی رسالهی که داره و درش اینطور و نقول و به تحریم ربا و رشوه و سر و القمار و حلق دهیه و اکل سمک الله فلس له و نقول و ظاهرشن یعنی مسلم فیشیه از نقول و شبیه دعوایی ماه. مرحوم شیخ بهایی و من هم سید عبدالکریم من احفاظ سید نعمت الله جزائری در کتاب درر المنصوره وقتیشون در این کتاب گفته که لا از کروفی الا ماکان منصوصم علیه این الاخوار گفته بقید منصوص رو میگم یکی شمه حلق الهی رو گردیم من هم شد احمد احسایی معروف در رساله حیدریه قال یحرم و حلق الهی و هو سنت مجوز من هم مرحوم فاضل کلباسی در کتاب معراج در شرح منهاد قال از سعر و من المحاسم و عظیمه و نعم الجزیل رجال و یحرم ما حلقه ها و یکره و بلا خلاف و من هم شیخون صاحب و جواهر که خوندن و من هم شیخون ها, ها انصاری فی رسالت الفارسیه المعروفه به مسئله مساله, مسأله این در کتاب هایی که ما الان داریم در رساله هایی که ما داریم مثل منحاج سالیمی و این رساله های فارسی اخیر ما در اروه نیامده. آمده اما در کتاب اولین که رساله های فارسی ما خیلی مشهور شد همین رساله ی توزیول مسائل مرموم های بروجهویه چون من از کتابی که خود مرموم های بروجهویه تو, تو هم ایشون نداره اما تو توزیول مسائل که اون شیخ الله بعد فرمودن. جز اواخر توضیر مسائل فارسی از اونجا آمد این وقت تراشنگیش حرام است. و من هم مرهوم محدث نوری در مستردک باب حرمت لحیه من هم سدکازم توافید در اربیلی در اجورت المسائلشه من هم بله میزاسه نائمی حالا اینشون نعام میکنه از من از مشایخ هم منجلال های بلو جیز و تو نجم نشید برای اولین بالشون اصلا میگه مرمون هایی میگه جایز نیست کنتر از لحیه یعنی ایشان اعفایله ها رو واجب میده نه هرگ رو حرام اعفایله هایی باید بشه و هستشیه قبضه کنتر اصلا نوشته بل منع من, من جعله ها دون رو قبضه خیلی با راست باشه خیلی عجیبه اصلا ایشون گفت کنتر از قبضه جایز نیست باید اطاله بشه تا حد تجزیه و من هم در سر صدر کاظمی بله بعد بله. این تا اقوال ظاهیره سالی مختصر جمع جدی فقط قبول این تا این آقایان تا زمان ما هر کی متعرض شده این روش میشه اجماع به این معنی میشه قبول کرده